کتاب افسانه های ملل نویسنده محمد مصطفی نژاد ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده الهی اصلانی کوه در زمانهای بسیار دور در ایران زمین، پادشاهی دانا زندگی میکرد که پسری داشت. پسرش فرهاد نام داشت و خیلی تنبل بود. او تمام طول روز رو با بازی و سرگرمی های بیهوده میکزرند و وقت خودش رو تلف میکرد. پادشاه از این موضوع خیلی ناراحت بود و وقتی تصور میکرد که این پسر قرار پادشاه آینده بشه خیلی غمگین و نگران میشد. بنابراین به فکر راه چاره افتاد. چند سال بعد وقتی پسر بزرگتر شد یک روز صبح پادشاه به اتاق او رفت و گفت امروز میخوام تو رو به جایی ببرم. زود آماده شد. فرهاد مثل همیشه به سختی از رخت خوابش بلند شد صبحانه ای مختصر خورد و با تنبلی زیاد لباساشو پوشید بعد به دنبال پدرش به راه افتاد اونها از قصب بیرون رفتن و از شهر فاصله گرفتن اطراف ظهر بود که از جنگل بزرگی رد شدند و به دامنه های کوه بلند رسیدن پادشا به سرش نگاه کرد و گفت اسم این کوه کوه خوشبختیه فرهاد با بیحالی تمام پرسید خوشبختی؟ چرا خوشبختی؟ اینکه که فقط یه سنگه چطور میتونه کوه خوشبختی باشه؟ پادشاه گفت در سرزمین های اون طرف رود بزرگ گنجی وجود داره اینجا نقشه اون گنج پنهان شده تو باید اون نقشه رو پیدا کنی محل گنج رو از روی نقشه کشف کنی و اون گنج رو به دست بیاریم. بعد سوار اسب شد و گفت اگه این کار رو انجام ندی خبری از تخت پادشاهی نیست. دیگه وقتشه که از هم جدا بشیم. و بعد شروع به حرکت کرد. فراد که تا اون زمان هرگز از قصر خارج نشده بود، با گریه اوزاری به سمت پادشاه رفت و ازش خواست که اون رو تنها نگذاره. اون همینطور که داشت دنبال پدرش میرفت با و گفت پدر اما من گنج نمی من هیچ جایی رو بلد نیستم. چطوری این نقشه رو پیدا کنم؟ اصلا چرا باید پیداش کنم؟ من همه چیز دارم اما پادشاه بدون توجه به اینکه اون داره چی میگه همینطور داشت دورتر و دورتر میشد. و به فرهاد گفت توی وسایلت مقداری قضا و پول و سلاح گذاشتم سعی کن به درستی از اونها استفاده کنیم. فرهاد با سرعت به دنبال پدرش دوید اما فایده ای نداشت پادشاه با اسب تند روی خودش رفت و رفت تا اینکه که لابلای درختان جنگل ناپدید شد. فرهاد بلافاصله فاصله پیش اسبش برگشت و سوار شد. همین که خواست دنبال پادشاه به جنگل بره ترسید چون که متوجه شد هوا دیگه داره تاریک میشه و جنگل رو هم بلد نیست. با ناامیدی از اسبش پیاده شد و روی سنگها نشست. کوه خیلی بزرگ بود و جنگل هم خطرناک بود. برها تا اون زمان تنهایی رو در خارج از قصر تجربه نکرده بود و خیلی می به همین خاطر چند تکه هیزم جمع کرد و کمی از کوب بالا رفت تا اینکه یه غار کوچیک پیدا کرد و تصمیم گرفت شب رو اونجا بگذرونه. داخل غار یه آتیش روشن کرد کنارش نشست و به فکر فرو رفت. اون به گنج علاقه ای نداشت اما با خودش فکر کرد که اگر میخواد از این جنگل رد بشه به اون نقشه نیاز داره. بنابراین روز بعد سراغ وسایلش رفت و تصمیم گرفت جست رو شروع کنه. توی وسایلش مقداری غذا، یک کیسه سکه طلا، شمشیر، خنجر، تیر و کمان و یک کتاب بود. خنجر و شمشی رو برداشت و مشغول گشتن توی کوه شد. فرهاد هر روز صبح از خواب بیدار می شد و دنبال نقشه می گشت. اونقدر جستجو کرد که دیگه رمقی براش نمونده بود. بعد از چند روز داشت ناامید می شد. روزها سپری شدند و از نقشه خبری نپود. تا اینکه یک روز غذاشم تموم شد و گرسنگی بهش خیلی فشار آورد. بنابراین اصفش رو برداشت و راهی جنگل شد تا شاید بتونه چیزی برای خوردن پیدا کنه. مدتی در جنگل گشت تا به یه برکه کوچیک پر از ماهی رسید. خنجرش رو برداشت و داخل برکه شد. بعد از کلی تلاش تونست چند تا ماهی کوچیک رو با خنجرش از آب به بیرون پرتاب کنه. خیلی خوشحال بود این اولین باری بود که غذاش رو خودش تهیه می کرد و اونقدر از این کار احساس خوبی داشت که همونجا تصمیم گرفت وقتی به خونه برگشت هر هفته با پدرش به شکار بره. بعد از غذا چندتا ماهی با خودش برداشت و به کوه برگشت و روز بعد دوباره مشغول جستجو شد. اما خبری از نقشه نبود دیگه کاملا ناامید شده بود در همین هنگام به فکر وسایل توی بخچه افتاد. بین اونها کتابی بود که فرهاد اصلا نگاهی هم بهش ننداخته بود. اصلا چرا پدرش اون کتاب رو براش گذاشته بود؟ شاید میخواسته با اون کتاب به فرهاد چیزی رو بفهمونه. با سرعت به سمت بخچه رفت کتاب رو بیرون آورد و گشتن گشتان لابلای صفحات کتاب شد. بعد از اینکه چیزی پیدا نکرد با عصبانیت کتاب رو به گوشه ای پرت کرد اما دوباره با خودش گفت شاید چیز مهمی توی اون کتاب نوشته شده بنابراین دوباره کتاب رو برداشت و تمام طول شب رو مشغول خوندن اون شد کتاب درباره سرزمینهای مختلف ایران زمین بود توی اون کتاب چیزهای زیادی در مورد مکانهای مهم کشورش مردم و آداب و رسوم اونها و خطرهایی که کشور را تهدید میکردند نوشته بود هر هرچقدر جلوتر میرفت از کتاب بیشتر خوشش میومد اونقدر از خوندنش لذت برده بود که همونجا تصمیم گرفت وقتی به خونه برگرده هر چقدر که میتونه در مورد سرزمینش کتاب بخونه. حتی تصمیم گرفت که اگر پادشاه اجازه داد به جاهای مختلف کشورش بره و در مورد اونها چیزهای زیادی یاد بگیره. چند روز طول کشید تا کتاب رو تمام کرد. کاملا نقشه گنج رو فراموش کرده بود. بعد از اینکه کتاب تمام شد رفت و تا اون رو توی بخچه بذاره. که کتاب از دستش افتاد و جلدش پاره شد. از داخل جلد رنگ کتاب پارچه سفید بیرون زده شد. وقتی اون رو درآورد آورد با تعجب تمام دید که یه نقشه است. از خودش پرسید. نکنه این همون نقشه گنجه بعد کمی فکر کرد و فریاد زد درسته پدرم گفت که نقشه اینجاست اما نگفته بود که حتما داخل کوه پنهان شده. بعد به آسمون نگاه کرد و با خوشحالی گفت خدای رو که من نقشه رو پیدا کردم. شاید با این نقشه بتونم راه خونه رو پیدا کنم و پیش خانوادم برگردم. بعد با عجله نقشه رو زیر نور خورشید گرفت و با دقت اون رو نگاه کرد اما نقشه مقصد خاصی رو نشون نمیداد و پر از خطوط پیچ خورده بود به هر حال فرها تصمیم گرفت نقشه رو دنبال کنه حتی اقلش این بود که میتونست با استفاده از اون از جنگل رد بشه و شاید حتی بتونه به خونه برگرده صبح روز بعد با کمک گرفتن از نقشه از جنگل رد شد و بعد به رودخونه بزرگ رسید رودخونه رو هم پشت سر گذاشت و به یه شهر کوچیک رسید با دیدن شهر خدا رو شکر کرد بالاخره میتونست چند شب رو راحت استراحت کنه و غذای خوبی بخوره بعد از اون فرها تا جایی که پول داشت سرزمین ها و شهرهای مختلف ایران زمین رو گشت اون به هر شهری که می رسید پیش دانشمند اون شهر میرفت رفت و یک کتاب ارزشمند از اون به یادگار می گره. همینطور ادامه داد و همه سرزمین های کشورش رو به خوبی یاد گرفت. حتی ای رو که پدرش بهش داده بود کامل تر کرد. بعد راه خونه رو به راحتی پیدا کرد و پس از چند ساعت پیش پادشاه برگشت. پادشاه و مردم از اون به گرمی استقبال کردند و پادشاه جشن بزرگی به افتخار برگشتن فرهاد به پا کرد. فرهاد دیگه بزرگ شده بود و از سفرهاش تجربه‌های زیادی به دست آورده بود و خیلی چیزها یاد گرفته بود. بعد از اینکه ماجراهایی رو که در سفرهاش با اونها روبرو شده بود رو برای پادشاه تعریف کرد پادشاه فهمید که فرهاد خیلی دانا شده و به خاطر سفرهای زیاد همه شهرهای کشورشون رو دیده و با همه مردم آشنا شده بنابراین پادشاه خوشحال شد و به این نتیجه رسید که دیگه میتونه به اون اعتماد کنه و پادشاهی رو به پسرش بده اما فرهاد اولین کاری که بعد از برگشتنش به قصر انجام داد این بود که یک کتابخونه بزرگ درست کنه و تعداد زیادی کتاب خوب که از دانشمندان شعرهای مختلف به یادگار گرفته بود رو در اونجا جمع کرد. اون هر روز در کتابخونه کتاب میخوند و چیزهای جدید یاد میگرد. همچنین هر چند روز یک بار از پادشاه میخواست تا با هم به شکار برند. بعد از چند ماه به کوه خوشبختی رفت و دستور داد روی دیواری کوه جمله ای رو حق کنن. اون جمله این بود. در این کوه گنجی مهم پیدا کردم. سالها بعد پادشاه مرد و فرهاد به پادشاهی رسید. پادشاه فرهاد با قدرت و دانایی زیاد، ایران زمین رو به خوبی اداره کرد و سالهای زیادی فرمان روایی کرد مردم هم اون رو خیلی دوست داشتند و در آرامش زندگی کردن راستی گنجی که فرهاد پیدا کرده بود چی بود؟ سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کتوله ها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 در کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستان های صوتی